قوم 64 میگویند این موسیقی بدعت است، کفر است دست بردارید آقایان. هنری که با عشق اجرا می شود چطور ممکن است کفر باشد. لابد میخواهند بگویند خدا موسیقی را، نه فقط موسیقیی که با دهان و ساز اجرا می شود بلکه نوای عزیزی که تمام کائنات را دربر گرفته به ما عطا کرده بعد هم گوش دادن به آن را منع کرده همینطور است مگر نمی بینید کل طبیعت هر لحظه و همه جا به ذکر او مشغول است؟ هرچه در این کائنات هست با همان آهنگ اصلی حرکت می کند، تپش قلبمان، بال زدن پرنده در آسمان، بادی که در شب طوفانی بر در می کوبد جوشش چشمه کوهساران، کوبش آهنگر بر آهن، صداهایی که کودک در رحم مادر میشنود، همه و همه، با نقمی شکوه من و واحد هماواز است. موسیقی که در هنگام چرخ زدن می شنوند، حلقی از حلقه این زنجیر الهی است. همانطور که قطری آب اقیانوسها در خود دارد، سماع ما هم رازهای کائنات را در خود دارد. پیش از آین سما با مولانا به اتاقی ساکت رفتیم تا غرق تفکر شویم شش درویشی که قرار بود شب در سما شرکت کنند به ما ملحق شدند به اتفاق وضو گرفتیم و دعا کردیم بعد تنور تن پوشیدی سکه اصلی سنگ قبرمان بود تنوره تن بلند و سفید چفن نفس من. خرقه هم قبر آن که پیش از مرگ مرده آنان که خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو خفته یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند. ما اهل حالی اهل دل اهل عشق ما مانند پرگاری یک پایمان استوار بر شریعت با پای دیگرمان هفتاد و دو ملت را چرخ میزنیم پیش از آن که به سما وارد شویم این ابیات از دهان مولانا جاری شد پیشترا پیشترا چند از این رهزنین چون تو منی من توم چند توی یومنی. ما همه یک گوهریم، یک خرد و یک سریم، لیک دور کشته ایم، زین فلک منحنیم. آماده بودیم، ابتدا صدای ناله نی آمد. سپس مولانا در حیعت بزرگ سما زنان به میدان وارد شد. درویش ها که یکی یکی به میدان وارد می شدند، متوازعانه سرخم کرده بودند آخرین نفری که باید وارد میشد، شیخ بود هرچه انکار کردم باز اصرار کرد که این وظیفه را به من بسپارد زربه های قدوم به هماوایی با صدای جانفضای نی و رباب آمد بشنو از نی چون حکایت می کند. از جدائی ها شکایت می که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. اولین درویش سما آغاز کرد همانطور که از دامن تن خشخشی ظریف برمی آمد پیش چشم تماشاچیان از این عالم دور شد بعد همه به سماع پرداختیم، آنقدر چرخ زدیم تا غیر وحدت نماند. هرچه از آسمان گرفتیم به خاک، هرچه از حق گرفتیم به خلق دادیم. ریسمانی شدیم میان آشق و معشوق. موسیقی به پایان که رسید به احترام عناصر اصلی کائنات ایستادیم. آتش و باد و خاک و آب و پنجمین انصر خلق. از بگو مگویی که بعد از سما با کیخسرو کردم پشیمان نیستم. فقط از این متاسفم که مولانا را در موقعیت دشواری قرار دادم. اما این هم لازم بود. مولانا همیشه امتیازهای خاص داشته. و حاکمان مراقبش بودند الان حسی را که مردم عادی خیلی خوب میشناسندش برای اولین بار چشید حس ضعف در برابر نخبگان حاکم مولانا پیش از درک درماندگی محرومیت و بیچارگی چطور میتواند تواند به شاعری بدل شود که همه پذیرایش شود به این ترتیب به گمانم زمانم در قونیه به سر آمده. وقت رفتن رسیده. عشق حقیقی راه را بر استحاله های غیر می گشاید. عشق نوعی میلاد است. اگر پس از عشق همان انسانی باشیم که پیش از عشق بودیم، به این معناست که به قدر کافی دوست نداشتیم. اگر کسی را دوست داشته باشی، با معناترین ترین کاری که می توانی به خاطر او انجام بدهی، تغییر کردن است. باید چندان تغییر کنی که تو از تو بودن درآیی شعر، موسیقی، پایکوبی، دستفشانی، مدارا، سیالی استحاله مولوی به نظرم کامل شده دیگر دارد به شاعری توانا و ترجمان حال جمله خاموشان تبدیل می شود و اما من من هم تغییر کرده ام و تغییر می کنم. از هستی به نیستی می روم. از موسمی به موسمی از مرتبهی به مرتبهی از زندگی به مرگ می لغزم یاد حرفهای بابا زمان می‌افتم می گفت برای اینکه ابریشم سالم از پیل جدا شود کرم ابریشم باید از جانش بگذرد دوستی و همدلیمان لطف الهی و ارمغانی بی‌مثال بود با گپ گف و گفت بزرگ شدیم شاد شدیم جوانه زدیم مثل گل دادن چلمه دادیم و مزه کامل بودن را چشیدیم. هیچ کس نمیتواند به تنهایی از خامی به پختگی برسد باید رفیق راحت را پیدا کنی تا مثل پرنده از این منزل به آن منزل پرواز دهد و اگر پیدایش کردی خودت را نه او را باید بزرگی ببخشی شب سما پس از آنکه همه رفتند و سر و صداها خوابید، تک و تنها در سما خانه نشستم. داشتم به پایان زمان مشترکم با مولانا در این دنیا می رسیدم. در مدت دوستی من زیبایی نادیده را با هم قسمت کردیم. مانند دو آینه، که بیوقفه تصویر هم را منعکس می کنند در وجود یکدیگر به تماشای ابدیت نشستیم. اما در پایان چرخ می چرخد. دور تمام می شود و آینه به راست بدل می شود. هر زمستانی بهاری و هر بهاری پایانی دارد. و این نکته هنوز معتبر است. هر جا عشق باشد، دیر یا زود جدایی هم هست.